بخش چهار ابراهیم روحامی کجا دیدمت؟ اولین بار در آخرین جلسه ی درس اخلاق آن روز دیدمت دیدن به معنای آن که مورد توجه هم قرار گرفتی سوال نکردی گفتی اخلاقیات را عرف تعیین کند ندین دین فقط با عرف همراه می شود میبینی بعد از حدود بیست سال هنوز اولین کلامت را به خوبی به یاد دارم اولین کلمه اولین کلام تو با این کلمات بر من ظهور کردی مثل یک حقیقت ناب حقیقت ناب هم از آن جفنگیات است میخواستم صاحب این کلمات را ببینم چهرهش را قد و قامتش را روحش را، رو جسمش را رو. روبه سقف کلاس گفتم شما خواهر بمانید شاید ده نفر همراه با هم گفتند ما آقا؟ و تو نگفتی ما آقا همانجا که نشسته بودی نشستی همه که از کلاس بیرون رفتن به پنجره کلاس گفتم اسم شما چیه خواهر؟ گفتی محمد جانی آقا گفتم زیاد کتاب میخونی؟ گفتی ای گفتم پدر و مادرت چه هستند؟ سکوت کردی من در فضای خالی کلاس دنبال صدایت میگشتم گفتم سوال بدی کردم؟ گفتی نه منتظر بودم ولی تو ساکت بودی گفتم فرزند چندم خانوادهی خواهر محمدجانی فکر می‌کردم تحت تأثیر خواهر یا برادر بزرگترت هستی. گفتی: سؤال آدم رو یاد پاسپورت‌ها این آقا. خندیدی. ناخداگاه برگشتم و برای اولین بار چاله هایت را دیدم. روی صورتت درنگ کردم. شاید همان درنگ بود که تو را واداشت بگویی: پدرمون عمرش رو داده به شما. مادرمونم مرد شوره تو اولین زنی بودی که در منطقه دیده بودم نیش کلامت در قلبم نشست گفتم خواهر محمد جان این چه طرز حرف زدنه؟ گفتی این طرز حرف زدن رو مدیون عرف جامعه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ هزاران ساله و اقتصاد کشاورزی هستم گفتم با یک مرد بیگانه و نامحرم گفتی من فقط جواب سوال شما رو دادم نمیدانم اگر خانم مدیر نمیامد این گفتگوی مسخ تاکی می میافت تو بلند شدی چادرت را محکم روی صورتت کشیدی و گفتی خداحافظ من رو به کفش های خانم راستی گفتم خداحافظ خواهر خانم مدیر گفت برادر روحامی ای پیش اومده؟ گفتم های عجیبی میپرسد و اظهار نظرهایی می که به سن و سالش نمی آید. گفت شاگرد اول کلاسشونه برادر کتابخونم هست تو همه ی مسابقه ها نفر اوله گفتم پدر و مادرش شکاره هستند گفت پدر که نداره مرده مادرش هم اینجا و اونجا کار میکنه، خونه این و اون، حقیقتش مردشورم هست این اولین سیلی بود که محکم توی گوشم زده بودی، شاید هم یک پس گردنی جانانه بود سیلی، پس گردنی میبینی کلمات چه جفایی به آدم ها میکنند؟ میخواستم بگویم این فایده ندارد نمیتوانم آنچه در آن روز در من و بر من روی داد بگویم طوفان شروع شده بود هنوز مرضیه با من بود هنوز بر سر قول و قرارها به توافق نرسیده بودیم تابستان آن سال امور تربیتی یک دوره کلاس فشرده ی عقیدتی برای دانش آموزان برجسته و فعال گذاشته بود و مطمئن بودم تا شاگردان کلاسی بودی با شوق درس را شروع کردم منتظر سوالها و اظهار نظرهایت بودم، اما تو خاموش بودی، خاموش، آخرین ردیف می نشستی، برخلاف دیگران یادداشت بر نمی داشتی، مستقیم به من نگاه می کردی و من مستقیم به دیوار نگاه می کردم و تصویر وار تو در نگاهم می نشست، پرهی به دختری سیاه پوش با که کلمات را می جلسه از پی جلسه می آمد و میرفت و تو مهر سکوت از لبهایت بر نمی داشتی. شاید دو جلسه مانده بود به آخر که تاقت نیاوردم و یک روز در پایان کلاس تو را نگه داشتم. برخلاف گذشته رویت را رو محکم گرفته بودی و سرت پایین بود. گفتم خواهر محمد جانی کلاس برای تن کننده است؟ نه اصلا خیلی هم آموزنده است. نه یاد داشت بر دارید، نه سؤال می کنید، نه اظهار نظر. امسال دانشگاه باز میشه شه آقای روحامی. خب باز شه. نمی خوام ایجاد کنم. شبهه ؟ می خوام برم دانشگاه. نمی خوام درد سر ایجاد بشه. خندیدم. تو هم خندیدی، اما زیر چا گفتی؟ با این همه باید خدمتتون ارز کنم کتاب انسان موجود ناشناخته نوشته ای الکسیس کارله نه کارل الکس و شعر ذره ذره کان در این عرض و سماست مال مولوی است نه سعدی و در مورد ماجرای افک با شما مخالفم خندیدم گفتی خداحافظ من ایستادم و طوفان ذهن و روحم را در هم پیچید تابستان طولانی بود و من سرم شلوغ بود و از همه مهمتر چطور میتوانستم به جست و تو بیایم. ماجرای شیخ سنان داشت تکرار میشد. با این همه یک روز به سر سرزدن به خانواده هیدر به روستاییتان آمدم. آنجا بود که فهمیدم تا نامزد غیر رسمی هیدر اسیر هستی. این را از نامه های هیدر فهمیدم. وقتی در هر نامه گلای مندانه خواسته بود تو چیزی برایش بنویسی؟ و باز همانجا بود که فهمیدم مادرت مغازه کوچکی دارد که میشود از آن تخم مرغ و ماست و دوغ محلی خرید. به بحانه خرید تخم مرغ محلی همراهانم را به مغازه مادرت کشیدم. چیزی از صورت تو در صورت مادرت ندیدم. زن آفتاب سوخته یک بود که فرز و چابا کمه را راه انداخت. بدون این که یک ریال تخفیف بدهد کلی چرب زبانی کرد. من تا آبان سال 1361 را ندیدم. آن روز به بهانه اهدای جایزه مسابقه عقیدتی آموزش و پرورش منطقه به مدرسه آمدم و جایزه را که یک جلد نهجل بلاغه بود سر صف تو دادم و در تمام مدت از درون لرزیدم. دعوای من و مرزیه همراه با طوفان درونم اوج می گرفت. ایدان سال مرزیه به تهران رفت و من در گوران ماندم، دوباره به بحانه خرید ماست و تخم و مرغ به مغازه مادرت سر زدم اما ندیدمت. بار سوم وقتی کتاب به دست پشت دخل مغازه مادرت بودی، چیزی در درونم به جنبش درآمد. آمد. تو از جا برخواستی و من پشت جلد کتاب را خواندم. جای خالی سلوچ. گفتم: خواهر محمدجانی شما هستید؟ گفتید: ظاهرا شما مشتری مادرم هستید. پشت این جمله ساده ای بزرگ نهفته بود. به عبارتی به من گفتی بزن به چک مردک حقه باز. گفتم اینجا هم کتاب می‌خونید؟ گفتی رمان. به عبارتی گفتی سوالت را سر راست بپرس مردک. گفتم رمان؟ گفتی می‌خواید آدما رو بشناسید رومان بخونید. به عبارتی گفتی میدونم چرا این دور رو برای موس, موس می کنی. گفتم. فکر نمی کنم اینجا جای مناسبی برای کتاب خوندن باشه. چیزی نگفتی. ولی من شنیدم. جای مناسبی برای کتاب یا برای کسی که گلوی شما پیشش گیر کرده. گفتم. والده تشریف ندارن؟ گفتی. در خدمتم. گفتم. سلیقه من رو مادرتون میدونن. گفتی. دوغ ترخون زده؟ گفتم، ظاهرا خبره این کارید. گفتید، مگه چند تا مشتری مثل شما داریم؟ دوغ را در دبهی که به دست داشتم ریختی و بدون هیچ تعارفی پول را از دستم گرفتی. وقتی پول را می گرفتی، وسوسه شدم همانجا دستت رو بگیرم. این آخرین دیدار رسمی ما بود. وقتی اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه برای گزینش آمد، اولین نفری که با نظر من دار اعلام شد تو بودی. یک هفته بود مرزیه به تهران برگشته بود. با صادق رفت، قول و قرارها گذاشته شد و من جز به تو به کسی فکر نمی کردم. در جلسه هیئت گزینش به همه گفتم که تو دختر با استعدادی هستی، اما ممکن است محیط دانشگاه برایت خطرناک باشد و تأکید کردم او را باید به گونه‌ای نجات داد. کلمه نجات را با تعنی و تعمل ادا کردم و فکر کردم باید این کلمه بتواند بار همه رویدادهایی را که ممکن بود در آینده اتفاق بیفتد با خود تا ذهن دیگری و دیگران بکشد. آقای فاطمی مسئول گزینش گفت: «منظورتان از نجات چیست؟ منتظر سوالش بودم گفتم: « نمیدانم چطور میتوان به او کمک کرد." به هر حال او از خانواده است و دختر با استعداد است. ولی به نظرم اگر شغلی به او داده شود مناسبتر از راهیابی به دانشگاه باشد. وقتی نتایج دانشگاه آمد و اسم تو در نیامد، مدیر مدرسه‌ت شکوایهی احساساتی برای هیئت گزینش فرستاد ورنج و درد‌های تو را چنان بزرگ کرد که همه را به تفکر، استیصال و احتمالا توبه واداشت. دو هفته بعد از نامه خانم مدیر، مسئله را با آقای فاطمی در میان گذاشتم. فاطمی از این همه گذشت و فداکاری قددانی کرد و گفت خودش مسئله را با مادرت در میان میگذارد. اولین پاسخ مادرت دور از انتظار نبود. گلبانو نامزد داره. نامزدش اسیره. دومین پاسخ نشان میداد مادرت اهل معامله است و فقط سعی می کند نرخ را بالا ببرد. آقای روحامی سرور ما هستن ولی جای پدر گلبانو هستن. سومین پاسخ امیدوار کننده بود. من حرفی ندارم. منطقه گلبانو قبول نمی کنه. فاطمی پیشنهاد کرد با تو حرف بزنم کاری که اصلا و ابدا به انجامش تمایل نداشتم میدانستم پیروز این میدان تو هستی تنها چاره کار معامله با مادرت بود غروب یک روز تابستانی به مغازه اش رفتم پنج بسته ی ده هزار تومانی روی یک کفه ی ترازوی مغازه اش گذاشتم و گفتم این شیربه ها یک سر سوزنم نمی خوام مادرت اسکناس ها را تند از توی کفه ترازو برداشت و جایی زیر آن میز لکنت پنهان کرد. گفت، شیربه ها رسمه ولی هر دختر یه بهایی داره. گلبانوی من قیمتش خیلی بالاتر از این حرفاست دستم را دراز کردم و گفتم، همین فردا صبح بهترین دختر گوران رو میگیرم. گفت، بهترین دختر گوران گلبانوه آقای روحامی. گفتم، منم بابت بهترین دختر گوران این همه پول دادم. دستش را پایین برد و من دستم را پس کشیدم. گفت باید صبر کنین. چموشه. به این زودیا رام نمیشه. گفتم سب میکنم. بدون اینکه خواسته باشم پلاستیک پر از تخم مرغ را به دستم داد. گفت پانزه تاست. تخم مرگ ها را گرفتم و پنجاه تومانی را روی کفه ترازو گذاشتم. گفت خبرتون میکنم. دو هفته بعد مادرت خبر داد گفت که پنجا هزار تومان برای خرید و مجلس عروسی می خواهد. بالاخره به چهل هزار تومان رضایت داد وقتی دستت را گرفتم و در خانه را به روی چشمهای مادرت محمدجانی زنش و آن تک و توک فامیلهایت بستم بازی را که مدتها بود شروع کرده بودم با جدیت ادامه دادم بازی که از آغاز خارج از ارادگ من و تو بود بازی تقدیر مرزیه همسرم بود، دختر امویم بود سیزده سال با هم زندگی کرده بودیم سر بر یک بالین گذاشته بودیم قرار بود هر سه ماه یک بار به دیدنش بروم معلم بود، معلم بچه های کوچک شاید به همین خاطر بیشتر از من در حسرت بچه میسوخت. اولین بار مسئله را حاج صادق مطرح کرد شوخی بود یا جدی نمیدانم گفت مرزی اجازه بده ابراهیم از این دهات اطراف زن بگیره. بچه دار که شد حق و حساب زنه رو میده بچه رو برمیداره. دو سال بعد حاج صادق مسئله رو جدی مطرح کرد. انگار با مرزیه به توافق رسیده بودند. اول امتنا کردم، اما بعد به مسئله فکر کردم. دو تا مئیار برای مادر بچه هم در نظر گرفتم. زیبایی و هوش. وقتی دیدمت احساس کردم همانی هستی که مدتها بود دنبالش بودم اما این ظاهر قضیه بود وقتی دیدمت چیزی هم در درونم تغییر کرد دلم میخواست این حال ادامه پیدا کند دلم میخواست آن اکراه و اجبار را از خودم دور کنم دلم میخواست عاشقت بشوم تو کمکم کردی این را هموار بشود اکراه تو، جواب منفی تو، رفتار بازیگوشانه آتش اشتیاقم را تیزتر می کرد. انگار وارد بازی شده بودم که باید برنده از آن بیرون می آمدم. حالا خودم را شاهزاده ای می میدیدم که باید معماها را حل میکردم هفتخان را پشت سر میگذاشتم و سرم بر دروازه شهر آویخته می برخلاف بر خلاف نظر مرزیه وهایج صادق من دلم میخواست وارد یک ماجرا بشوم ماجرایی که همیشه آرزویش را داشتم دلم می‌خواست خواست شو. مرزیه را دوست داشتم اما هرگز آشقش نشدم و نبودم مثل همه دخترمو و پسرموها عقدمان در آسمانها بسته شده بود و ما بر سر سفره آماده ی عقد نشسته بودیم تا عقد آسمانیمان را زمینی کنیم من دلم یک عشق زمینی می‌خواست. شاید این از عوارض میان سالی بود مرزی که آدمی نمی‌داند به کدام طرف رو کند به گذشته یا به آینده سرگردان و سردرگم می شود وقتی گذشته را مرور می کردم، آن را خالی می یافتم بی بار و بنه، و رهوتی خشک و بی حاصل آینده را هم روشن نمی دلم می خواست کاری کنم دلم می خواست تغییری در زندگیم ایجاد کنم تو را که دیدم بازی را شروع کردم اما نمی دانم کی و چطور آن بازیی که قرار بود قاعده من باشد بی شد یا دست کم قواعدش دیگران قواعد از پیش تعیین شده نبود هاش صادق شناسنامه المسنا را که به دستم داد گفت ابرام به کلد نزنه یه وقت سر خواهرم شیره به مالیا در این شوخی تهدیدی جدی نهفته بود وقتی اولین بار به بهانه ماموریت به دیدن مرضی رفتم مرزی خیلی زود فهمید عوض شدم گفت مثل پسر بچه های تازه بالغ رفتار می کنی بازیهای تو شوخ هایت تراوتت جوانیت جسم و جانم را تازه کرده از همان لحظه که کنارت نشستم تا زنها روی سرمان قن به سایند و عاقد زیغه را جاری کند با آن کلام مزحکت دنیایم را به بازی گرفته بودی هنوز بله را نگفته بودی که بیمهابا صورتت را نزدیک صورتم آوردی و گفتی میدونی من کچلم؟ با این کلام نه تنها خودم که دنیایم را به مسخره گرفتی. همانجا و در همان لحظه بود که احساس کردم تو هم همه چیز را به بازی گرفتی. نمیدانستم راست نگویی یا دروغ ولی صرف گفتن آن کلام در جایی که جایش نبود دلم را لرزاند. میدانستم شوخ طبعی میدانستم باهوشی ولی نمیدانستم جسارت هم داری. بازی کردن جسارت می‌خواست و تو این را داشتی. مرزیه نمیدانست با تو زندگی نزیستم را زندگی می کنم. عشق نداشتم را تجربه می کنم. مرزها و حسارهایی را که به دور خودم ایجاد کرده بودم می‌شکنم و شکستن حسار از ایجاد حسار لذت بخشتر است. در آن چهار روزی که با مرزیه بودم نه تنها تو از ذهنم محف نشده بودی، که در هر حرکت و هر کلام مرزی جان می گرفتی و من مدام دنیای تو را با دنیای او مقایسه می کردم و دلم می خواست زودتر از آن دنیای جدی و خوشک بیرون بیایم. برای همین زودتر از موعد مقرر برگشتم. وقتی حاج صادق متوجه شد گفت نکنه فکر کرده قضیه جدیه. می بینی؟ او در رابطه من و تو شوخی و بازی ندیده بود. از آن زمان بود که من خودم را به زندگی سپردم. دیگر نمی دانستم چه چیزی جدی و چه چیزی شوخی است. خودم را به تو سپردم. به حال. به اکنون. وقتی سر کار می رفتم با بچه ها شوخی می کردم. تمایلی به سخت گرفتن نداشتم. دلم می خواست زودتر برگردم خانه تا تو برایم حرف بزنی. از رمانهایی که در طول روز خانده ای بگویی و من مثل جوانهایی که دوران نامزدیشان را می‌گذرانند دستت را بگیرم، نوازشت کنم و ببوسمت. نداشتن رابطه جنسی با تو بعد از قضیه بارداری و استراحت مطلقت، رابطه ی ما را کرده بود. هیچ وقت از هم دلزده نمیشدیم. بازی‌ها و من جوانانه بود. تو گویی زن و شوهر نیستیم. قرار از زن و شوهر بشویم این قرار این انتظار برایم شیرین بود احساس می کردم در دوران طولانی نامزدی به سر می برم هنوز هم بعد از سالها آن حس شیرین انتظار را دارم هنوز هم فکر می کنم روزی دوباره به هم می رسیم همه چیز خوب بود همه چیز خوب پیش می رفت. دیدار بعدیم از مرزیه بیشتر به خرید لباس و وسایل بچه گذشت مرضیه با ولع خرید می کرد انگار خودش باردار است خوشحال بودم که بالاخره پدر میشونم اما خوشحال تر بودم که تو را داشتم. دلم میخواست به جای نه ماه نوت سال بارداری تو طول میکشید. میدانستم با فارغ شدن تو مشکلات هم شروع میشوند اما مشکلات قبل از آن شروع شدند. چند روز بعد از آن که مدیه به دیدن تو آمد به حفاظت اطلاعات استان احضار شدم. در آنجا نه تنها به خاطر رابطه تو و ملیه مورد استنتاق قرار گرفتم که به دلیل ازدواج با تو نیست سینجیم شدم. آن واقعه تکانم داد. چون حضور پرقدرت هایت صادق را در پشت حوادث به عینه میدیدم حالا می دانستم که او نمی گذارد خوابی را که برایت دیده بودم تعبیر کنم. تو روزهای آخر بارداریت را می و من نمی خواستم تو از چیزی با خبر شوی. باید همه چیز عادی پیش میرفت. باید فرصتی پیدا می کردم تا تو را از آن مهلک بگریزانم. تنها راه چاره پذیرش تو در دانشگاه بود. از نفوذ باقی‌مانده‌ام استفاده کردم و هایی از نهادهای مختلف در تایید تو برای هسته مرکزی گزینش فرستادم. کاری که قبلا برای یکی دیگر از مردودین انجام داده بودیم و نتیجه داده بود. فکر می کردم با کشندن تو به تهران به نوعی امکان یک زندگی مشترک را به دور از چشمهای مرزی و هایت صادق می توانم پراهم کنم. اما هایت صادق از من جلوتر بود و همه چیز هم دست به دست هم داده بود تا او به مرا از میدان بدر کند. یادت هست یک شب ما نبش قبر اختر و امیر را برایم تعریف کردی؟ اطلاع از آن ماجرا کلیدی بود که می‌خواستم از آن استفاده کنم و قفل ناگوشوده ای را برای همگان باز کنم. می‌خواستم به این وسیله موقعیت تزعیف شدم را استحکام ببخشم. میخواستم ثابت کنم در بارم اشتباه کردند. خبر را که به مقامات بالا دادم، حیعتی از مقامات امنیتی استان به گوران آمد. خواسته یقین از صحت خبر و شناسایی افرادی بود که در جابجایی به اجساد دست داشتند. باغ زیر و رو شد یک درخت گردو نبود باغ پر از درخت گردو بود و بالاخره اجساد پیدا شدند گام اول با موفقیت برداشته شد خبر صحیح بود برخلاف انتظارم اجساد نه تنها جابجا جا نشدند بلکه به نحو آبرومندانه ای نشانه گذاری شدند حالا همه میدانستند قبر اختر و امیر اسفندیاری کجاست اما شناسایی افراد دخیل در ماجرا، هیاهوی در شمس ایجاد کرد. افراد و خانواده ها به بازجویی کشیده شدند. همه ی سرنخها به مادرت ختم شد. همه می اگر کسی جسارت چنین کاری داشته باشد، مادرت است. حتی یک نفر اقرار کرد که مادرت قبلا قبل یکی از بستگانشان را شکافته و کفن را از لای دندانهای او بیرون آورده. همه از امین بودن مادرت نزد خانواده اسفندیاری حرف میزدند و میگفتند اگر کسی چیزی بداند مادرت است. می بینی آدم بازی را شروع می کند بدون اینکه بداند این بازی میتواند خودش را از میدان بدر کند. من به قصد نجات خودم و تا این بازی را شروع کردم. مادرت به همه چیز اعتراف کرد. گفت که اسفندیار خان تهدیدش کرده. گفت که هم رزمان اختر و امیر تمام شبخانهاش را در محاصله گرفته و تهدیدش کردند که اگر کار را خوب و تمیز انجام ندهد بچه هایش را میکشند. گفت به همین دلیل دخترم را با خودم به قبرستان بردم. گفت دختر جوونم را نمیتونستم تو چنگ یک مشت از خدا بیخبر بگذارم. گفت دخترم مریض شد. و بیمارستان بود. حدود یک ماه مدرسه نرفت. میتونین از پسرموش بپرسین، از خانم مدیر بپرسین. مادرت بازیگر خوبی بود، گذشتش، فقرش، شغلش را با آب و تاب برای مأمورین تعریف کرد. آخر کار هم گفت، اونا گفتن اگه یه وقت بعدها به کسی چیزی بگی، باید فاتحه ی بچهاتو بخونی. حالا اونا میان سراغ من و بچه هم. گریه کرد زاری کرد التماس کرد که نگویند او چیزی در این باره گفته همکاران همه متقاعد شده بودند که زن بیچاره از سر ترسان کار را انجام داده اما آن کسی که باید متقاعد میشد نشد حاج صادق شنیدهای ای قدیمی ها گفتند وقتی کسی بد می آورد، پشت هم بد می آورد. همان روزها بود که آن مردک مرتضا امیریون را در گوران جایی نزدیک خانه ما دستگیر کردند. حالا ما در سراشیبی بودیم. پای تو در قضیه نبش قبرها باز شده بود. من در تمام مدت تلاش می کردم هایت صادق را متقاعد کنم که تو دستی در ماجرای ملیه و محسن نداری. قافل از اینکه که ملیه به همه چیز اعتراف کرده. من بعد از پرونده نبش قبر دیگر کاری نبودم. عملا کنار گذاشته شده بودم. و در مزان اتهام بودم نمیدانستم سمدیه از نامه ها حرفی زده وقتی آن روز خانه بازرسی شد و آن ارسیه گرانبها به عنوان مدارک که جرم از آنجا خارج شد من فاتحه زندگی با تو را خواندم. حاج صادق اما دست بردار نبود میخواست بازی را تا پایان ادامه بدهد به من گفت اگر میخواهی خودت را نجات بدهی باید او را خراب کنی بعدها خیلی بعد فهمیدم میخواهد امکان فکر کردم به تو را از من بگیرد امکان اینکه یک بار دیگر در جایی زیر این آسمان بلند روی این زمین پهناور با هم باشیم میخواست من را پیش تو خراب کند تخم کینه و انتقام را در درون تو بکارد و مرا وادارت به همان زندگی همیشگی تن بدهم وقتی بعد از روزها موفق شد مرا به دادگاه ببرد و درخواست طلاق را مطرح کند از من دیگر چیزی باقی نمانده بود. حایت صادق همان روز که تو را دستگیر کردند، ترتیب انتقال حنیف را به تهران داد. چند ماه بعد، دیگر حنیفی در کار نبود. شناسنامش عوض شد. برایش نام اسمایل انتخاب شد. و به جای نام تو، نام مرزیه وارد شناسنامش شد. بعدها وقتی فهمیدم تو آزاد شده ای و در تهران فلسفه میخوانی، فهمیدم سرنوشت تو حاصل بازی منوهایت صادق است.